سه. معشوق ها عشق در وهله نخست ارتباط با یک شخص خاص نیست بلکه نگرش و جهتگیری منش انسان است که رابطه او را با کل جهان و نه با یک معشوق خاص تعیین می کند انسان اگر فقط یکی را دوست بدارد و نسبت به دیگر هم نوان خود بی و بیتفاوت باشد پیوند او عشق نیست بلکه نوعی بستگی همزیستی و تعاونی یا خودخواهی گسترش یافته است با وجود این اکثر مردم فکر می کنند علت به وجود آمدن عشق وجود معشوق است نه استعداد درونی در حقیقت آنان حتی فکر می کنند چون هیچ کس دیگری را جز معشوق دوست ندارند این خود نشان نشاندهنده شدت عشقشان است چون چون این فردی نمی‌تواند درک کند که عشق نوعی فعالیت و نوعی قدرت روح است، خیال می کند تنها چیز لازم پیدا کردن یک معشوق مناسب است و پس از آن بقیه کارها به خودی خود درست خواهند شد. این نگرش را می توان با نگرش آدمی که میخواهد نقاشی کند ولی به جای این که هنر و فن آن را یاد بگیرد، میگوید منتظر موضوع مناسبی برای نقاشی هستم و دا میکند که اگر موضوع را بیابد زیباترین نقاشی ها را خواهد کشید یکی دانست. اگر آدم واقعا کسی را دوست داشته باشد، حتما همه انسان ها، دنیا و زندگی را دوست می دارد. اگر من بتوانم به کسی بگویم دوستت دارم، باید توانایی این را هم داشته باشم که بگویم من در وجود تو همه را دوست دارم، با تو دنیا را دوست دارم، در تو حتی خودم را دوست دارم. اما از گفتن اینکه عشق نوعی جهتگیری نسبت به همه است و نه فقط به یک نفر نباید چنین نتیجه گرفت که بین انواع گوناگون عشق کتاب تابع های مختلفند تفاوتی وجود ندارد. آلف. عشق برادرانه. اساسی ترین نوع عشق که زمینه همه عشق های دیگر است. عشق برادرانه است منظور از عشق برادرانه همان احساس مسئولیت دلسوزی احترام و شناخت همه انسان ها و آرزوی بهتر کردن زندگی دیگران است این همان عشقی است که در کتاب مقدس از آن سخن رفته است که میگوید همسایت را چون خودت دوست بدار عشق برادرانه عشق به همه انسان هاست صفت مشخصه آن همان عدم استثناء است اگر توانایی دوست داشتن در من تکامل یافته باشد چاره جز دوست داشتن برادران نداریم در عشق برادرانه وحدت و پیوند متقابل با همه انسانها وجود دارد و بشریت در یک کل واحد احساس می شود عشق برادرانه بر این اساس استوار است که همه ما یکی هستیم اختلاف ذوق هوش و دانش در مقایسه با هویت مشترک انسانها ناچیز و قابل چشم پوشی است برای درک این هویت مشترک لازم است از سطح به عمق نفوذ کنیم. اگر تنها ظواهر اشخاص را در نظر بگیریم فقط تفاوتها یعنی چیزهایی را میبینیم که ما را از یکدیگر جدا میسازد ولی اگر به عمق برویم هویت عام انسانی یعنی برادری خود را می‌بینیم این پیوستگی از درون به درون به جای پیوستگی از سطح به سطح در پیوستگی مرکزی میباشد یا همان گونه که سیمون ویل به زیبایی بیان کرده است همین کلمات مثلا کلماتی که مردی به همسرش میگوید دوستت دارم بر طبق اینکه چگونه و با چه لحنی ادا شوند میتوانند پیش پا افتاده و معمولی یا فوق العاده باشند این چگونگی بیان بستگی به عمق آن سرچشمه‌ای در هستی انسان‌ها دارد که کلام از آن جاری می‌شود بی آنکه اراده انسان در آن دخالت داشته باشد از طریق مطابقت معجز آسایی این سخنان در دل شنونده نیز به کانون مشابهی می‌نشیند بدین ترتیب شنونده اگر قوه تشخیص داشته باشد میتواند ارزش واقعی آن سخن را دریابد عشق برادرانه عشق بین افراد برابر است ولی در واقع ما با همه برابری همیشه برابر نیستیم چون همه ما انسانیم همگی نیاز به کمک داریم امروز من فردا شما اما این نیاز بدین معنی نیست که یکی زبون و بیچاره و دیگری توانا و قدرتمند است ناتوانی حالتی گذرست توانایی ایستادن و روی پاهای خود راه رفتن در انسانها مشترک و دائمی است. با وجود این، اشق به ناتوانان، اشق به فقرا و غربا، آغاز عشق برادرانه است گوشت و خون خود را دوست داشتن کار فقلاده نیست حیوانات هم بچه های خود را دوست دارند و به آنها توجه می کنند شخص ناتوان ارباب خود را دوست دارد زیرا زندگیش در دست اوست کودک مادر و پدرش را دوست دارد زیرا به آنان نیاز دارد تنها در کسانی که عشقشان بی‌قصد و منظور است عشق شکفتن آغاز می می‌کند قابل توجه است که در عهد عتیق موضوع اصلی عشق بشری عشق به فقرا بیگانگان بی, بی زنان، یتیمان و بالاخره به دشمنان ملی، به مصری ها و به ادومی هاست از رهگذر همدردی با بیچارگان، عشق به برادر در آدمی پرورش میابد و انسان ضمن عشق ورزیدن به خود نسبت به همه کسانی که نیاز به کمک دارند نسبت به ضعیفان و ناایمنان عشق میورزد. همدلی و شفقت مستلزم انصر شناخت و یکی شدن با دیگران است در تورات آمده است تو قلب بیگانه را می شناسی زیرا که خود تو در سرزمین مصر بیگانه بودی بنابراین بیگانگان را دوست بدار ب شق مادرانه در فصل پیش طبیعت عشق مادرانه را مورد بحث قرار دادیم و اختلاف آن با عشق پدرانه مورد بحث قرار گرفت همانطور که گفته شد، عشق مادرانه تعیید و تصدیق بیقید و شرط زندگی کودک و نیازهای اوست. اما باید در اینجا مطلب مهم دیگری نیز بدان اضافه کنیم. تعیید زندگی کودک دو جنبه دارد. یکی توجه و است که صد درصد برای حفظ حیات و رشد کودک لازم است و دیگری که امیختر از حفظ زندگی است. این جنبه عبارت است از طرز برخورد و روشی که عشق به زندگی را به کودک القا کرده و این احساس را در او به وجود میآورد. زنده بودن چقدر خوب است. دختر یا پسری کوچک بودن چقدر عالی است. بودن روی این زمین چه لذتی دارد. این دو جنبه عشق مادرانه در داستان آفرینش کتاب مقدس با ایجاز بسیار بیان شده است. از این شرط حداقل فراتر می رود. و در روزهای پس از آفرینش طبیعت و انسان میگوید نیکوست عشق مادرانه در این مرحله دوم در کودک این احساس را به وجود می آورد که بگوید چقدر خوب است که به دنیا آمدم و در نهاد کودک نه تنها آرزوی زنده ماندن بلکه عشق به زندگی را القا می کند. همین عقیده در یکی از تمثیل های کتاب مقدس نیز آمده است سرزمین موعود به عنوان سرزمینی که شیر و اصل در آن جاری است توصیف شده است زمین همیشه نهاد مادر است شیر سمبل جنبه اول عشق یعنی علاقه و تأیید حیات است و اصل نشان شیرینی زندگی عشق به آن و احساس خوشبختی از زنده بودن است اکثر مادران توانایی شیر دادن را دارند ولی کمتر هستند مادرانی که میتوانند اصل هم بدهند. برای اینکه مادری بتواند اصل بدهد، نه تنها باید یک مادر خوب باشد، بلکه باید خوشبختی را هم در وجود خود احساس و لمس کند، و کم هستند مادرانی که میتوانند به این مرحله برسند. درباره اثر آن بر کودک نمیتوان مبالغه کرد، عشق مادر به زندگی به همان اندازه استرابش است. همه اینها در کل شخصیت طفل اثری عمیق دارند در واقع می توان در میان کودکان و بزرگسالان سالان آنهایی را که فقط شیر خورده اند از آنهایی که هم شیر خورده اند و هم اصل تشخیص بدهد روابط مادر و فرزند به خلاف عشق برادرانه و عشق زن و مرد که عشق بین طرفین برابر است به سبب طبیعت خود نابرابر است یعنی یکی به همه نوع کمکی نیاز دارد و دیگری این کمک را می دهد به خاطر همین ماهیت نوع پرستانه و بیچشم داشت است که عشق مادرانه بالاترین نوع عشقها و مقدسترین پیوندهای عاطفی محسوب می شود لیکن چونین به نظر میرسد رسد که کمال عشق مادرانه در عشق به نوزاد نیست بلکه در کودک در حال رشد است. در واقع اکثر مادران کودکانشان را تا زمانی دوست دارند که کوچکند و تمام و کمال به وجود مادر وابستند. زنان خواهان بچند و با تولد نوزاد بسیار خوشحال میشوند و مشتاقانه به او توجه و از او پرستاری میکنند. رغم این واقعیت که مادران جز تصادفی یا با مشاهده حالت رضایت در چهره کودک چیزی در مقابل زحمت خود نمیگیرند، همه چنین هستند. ظاهرا این خاصیت عشق که ریشه در غریزه دارد هم در حیوانات ماده و هم در زنان دیده می شود. ولی اهمیت عامل غریزی هرچه باشد، شک نیست که عوامل روانی انسانی خاصی نیز علت و اساس عشق مادرانه می باشند. یکی از آنها را در انصر خودفریفتگی عشق مادرانه می توان مشاهده کرد. تا مادامی که مادر احساس می کند نوزاد هنوز قسمتی از وجود اوست عشق او و شیفتگی دیوانه وارش به فرزند ممکن است به منزله ارزای خودفریفتگی او باشد. انگیزه دیگر آن ممکن است در آرزوی قدرت طلبی و تملک مادر نهفته باشد. کودک از آنجا که ناتوان و زبون است و کاملا تحت اراده مادر قرار دارد، میتواند موضوعی طبیعی برای اقناع میل به تسلط و تملک در زن باشد. احتمالا این انگیزه ها با وجود فراوانی اهمیت و عمومیتشان از نیازی که آن را میتوان نیاز به توفق نامید کمتر است این نیاز به توفق یکی از اساسی ترین نیازهای انسان است که ریشه در خداگاهی او دارد زیرا از نقشی که به عنوان یک مخلوق بازی میکند راضی نیست و نمیتواند خود را مانند تاس تخت نردی ببیند که از فنجان به بیرون پرتاب شده است او نیاز دارد خود را خالق بداند خود را از نقش منفعل خود به عنوان یک مخلوق بالاتر برد برای رسیدن به چنین رضایتی از طریق آفریدن راهای فراوانی وجود دارد طبیعی ترین و در عین حال آسان ترین آنها دلسوزی و عشق مادر نسبت به آفریده خیش است او به وسیله کودک خود را تعالی میبخشد. و عشق به کودک به زندگی او اهمیت و معنا میدهد چون مرد نمیتواند از راه آوردن بچه نیاز خود را برای تعالی و برتری ارضا کند بدین منظور به آفرینش مصنوعات بشری و اندیشه های گوناگون روی میآورد. ولی کودک باید رشد کند او باید از زهدان مادر بیرون آید و روزی نیز از شیر او بی نیاز شود و سرانجام باید انسانی به کلی مجزا و مستقل گردد. جوهر واقعی عشق مادرانه توجه مادر به رشد کودک است و این در نهایت یعنی خواستن جدایی کودک از خود. در اینجا تفاوت اساسی عشق مادرانه با عشق زن و مرد آشکار می‌شود. در عشق زن و مرد دو نفر که جدا بودند یکی می‌شوند. در عشق مادرانه، دو موجود که یکی بودند، از هم جدا میشوند. مادر نه تنها باید جدایی کودک را تحمل کند، بلکه باید آرزومند آن باشد و به حصول آن کمک کند. فقط در این مرحله است که عشق مادرانه به وظیفه دشوار تبدیل می شود، زیرا احتیاج به فداکاری دارد. نیاز به این دارد که بتواند همه چیز را ایثار کند، بدون اینکه توقعی جز سعادت کودک محبوب خود داشته باشد. و همینجاست جاست که اکثر مادران در کار عشق مادرانه خود شکست میخورند. زن خود شیفته، سلطجو و تصاحب کننده فقط تا زمانی که کودکش کوچک است میتواند در عشق مادرانه خود موفق باشد. تنها زنی که واقعا عاشق است، زنی که برایش ایثار لذت بخشتر از دریافت کردن است، زنی که بنیاد هستیش متین و استوار است، حتی هنگامی که فرزندش در روند جدایی از او گام برمی دارد، باز هم می تواند فرزندش را دوست بدارد. عشق مادرانه نسبت به کودک در حال رشد، عشقی که چیزی برای عاشق نمیخواهد شاید دشوارترین ترین صورت عشق باشد. و از آنجا که مادر به آسانی می عاشق نوزاد خود باشد، این عشق فریب کارترین عشق اما درست به سبب همین دشواری است که زن فقط میتواند یک مادر عاشق حقیقی باشد که بتواند عشق بورزد یعنی زمانی که بتواند شوهرش کودکان دیگر بیگانگان و همه انسانها را دوست بدارد زنی که به این معنا ناتوان از مهر ورزیدن است فقط میتواند تا مادامی که فرزندش هنوز کوچک است مادری مهربان باقی بماند و هرگز نمیتواند مادری دوستدار باشد که بهترین محک آن تحمل با اشتیاق جدایی و دوست داشتن پس از جدایی است. پ. عشق جنسی عشق برادرانه عشق میان افراد برابر است. عشق بناتوان است ولی با وجود تفاوتی که این دو عشق با یکدیگر دارند صفت مشترکی آنها را به هم پیوند می دهد و آن این است که به سبب طبیعتشان به یک شخص محدود نیستند اگر من برادرم را دوست دارم تمام فرزندانم را دوست دارم نه خیلی بالاتر از این بچه ها و تمام کسانی را که احتیاج به کمک من دارند دوست دارم اما عشق جنسی در نقطه مقابل این دو قرار دارد این عشق تمنای وصل و وحدت کامل است فقط با یک نفر دیگر طبیعت این عشق انحصاری است نه عمومی و چه بسا که فریب کارترین نوع عشق هاست در وهله اول باید گفت که این عشق غالبا با عاشق شدن های طوفانی یعنی فرو ریختن ناگهانی موانعی که تا آن لحظه بین دو بیگانه وجود داشته است اشتباه می شود. اما چنان که قبلا هم بدان اشاره شد طبیعی است که عمر این صمیمیت ناگهانی و طوفانی کوتاه است بعد از اینکه بیگانه از نزدیک شناخته شد دیگر موانعی برای غلبه کردن باقی نمیماند. و دیگر هیچ نوع نزدیکی ناگهانی در کار نیست تا برای رسیدن به آن کوشش شود در اینجا معشوق را مثل خود شناخته ایم یا شاید بهتر است بگوییم او را مانند خودمان کم میشناسیم. اگر شناخت ما از این فرد عمق بیشتری داشت، اگر میتوانستیم لایتناهی شخصیت او را تجربه کنیم، هرگز برایمان تا این حد آشنا جلوه نمیکرد و معجزه چیره شدن بر موانع هر روز از نوع اتفاق می افتاد. اما اکثر مردم هستی خود و هستی دیگران را خیلی زود کشف میکنند. و ظاهرا کار تمام می شود. برای آنان آشنایی و سمیمیت به طور عمده از طریق تماسهای جنسی به وجود می آید. چون آنان جدایی را در درجه اول تنها یک جدایی جسمی می پندارند و وصل جسمانی برایشان به منزله قلبه بر جدایی است. علاوه بر این، عوامل دیگری نیز هستند که پیش بسیاری از مردم غلبه بر جدایی است. درباره زندگی خصوصی خود، امیدها و استرابهای خود صحبت کردن، جنبه های بچگانه یا بچه مانند خود را نشان دادن، برقرار کردن و نشان دادن یک علاقه، ارتباط مشترک با خلایق دنیا، همه اینها برای اکثر مردم به مسابه قلبه بر جدایی است. آنها حتی ابراز خشم، تنفر و فقدان کامل من را نیز دلیل بر صمیمیت می شمارند و شاید این امر بتواند علت جاذبه انحرافی موجود را که اغلب بین زنان و شوهران دیده میشود توضیح دهد آنها فقط در بستر یا وقتی که دریچه‌های خشم و تنفر خود را متقابلا به روی یکدیگر می گشایند به نظر یک دل و صمیمی میرسند. اما کلیه انواع این نزدیکی ها با گذشت زمان رفته رفته رنگ می بازند نتیجه این می شود که شخص حوص می کند در جستجوی عشق به دنبال فردی تازه یا بیگانه جدید برود باز این بیگانه تبدیل به یک آشنا می شود دوباره عشق طوفانی شور و حیجانی به پا می کند و باز کم کم از شدت آن کاسته می شود و به تدریج در آرزوی یک فتح تازه یک عشق جدید از بین می رود و همیشه نیز با این توهم که عشق تازه رسیده با همه عشقهای قبلی فرق خواهد داشت و طبیعت فریبنده میل جنسی هم هرچه بیشتر به این توهمات دامن می زند. هدف میل جنسی آمیزش است و این میل به هیچ عنوان فقط یک اشتهای جسمی یا تسکین یک تنش دردناک نیست به همان اندازه که عشق می تواند انگیزه خواهشهای جنسی باشد بسیاری از چیزهای دیگر مانند ترس از تنهایی علاقه به غلبه کردن یا مغلوب شدن بیهودگی و پوچی شهوت آزار رساندن و حتی ویران کردن هم ممکن است آن خواهش ها را برانگیزد ظاهرا ممکن است میل جنسی به آسانی با حیجانهای شدید که عشق فقط یکی از آنهاست بیامیزد و به وسیله آنها برانگیخته شود از آنجا که تمایلات جنسی در ذهن اکثر مردم در کنار عشق قرار دارد اشتباها به این نتیجه میرسند که فقط وقتی همدیگر را از نظر جسمی میخواهند عاشق همند عشق می تواند وصل جنسی باشد که در این حالت ارتباط جنسی فاقد هر گونه آزمندی و آرزوی غلبه کردن یا مغلوب شدن است بلکه برعکس با لطف و عاطفه آمیخته است اگر اشتیاق وصل جنسی را عشق برنینگیزد اگر عشق جنسی در عین حال عشقی برادرانه نباشد هرگز به پیوندی بیشتر از آنچه پیوند گذرای عیاشی به وجود میآورد منتهی نخواهد شد جاذبه جنسی برای مدت کوتاهی توهمی از وصل به وجود می آورد. ولی این پیوند اگر آمیخته با عشق نباشد، پس از آن دو غریبه باقی می ماند که همچون قبل از وصل از یکدیگر دورند. گاهی در آنها ایجاد شرم می کند و گاهی حتی باعث تنفر آن دو از هم می شود. زیرا وقتی توهم از میان برود، هر دو بیگانگی خود را به مراتب آشکارتر از قبل احساس می‌کنند. احساس لطیف به هیچ وجه آنطور که فروید معتقد بود، والایش غریزه جنسی نیست، بلکه نتیجه مستقیم عشق برادرانه است که هم در عشق جسمی و هم در عشقهای غیر جسمی وجود دارد. در عشق جنسی نوعی کیفیت انحصاری وجود دارد که عشق برادرانه فاقد آن است. این کیفیت عشق زن و مرد بحث دیگری را برمی اکثر مردم انحصار طلبی زن و مرد را اشتباهن به معنی میل به تملک تلقی می کنند. چه بسیارن زوجهایی که عاشق همدیگرند، اما در دلشان اشقی برای دیگران نیست. عشق آنان در حقیقت یک خودپسندی دو نفره است. آنها دو نفرند که خود را در یک دیگر میبینند. و مشکل جدایی را با دو نفری کردن آن حل میکنند آنان از احساس غلبه بر جدایی بهرهورند ولی چون از دیگر انسانها جدا هستند از یکدیگر نیز جدا میمانند و نسبت به خود بیگانه میشوند احساس یگانگی آنان یک توهم است اشق زن و مرد انحصاری است اما این عشق در وجود دیگری عاشق همه بشریت یعنی عاشق تمام چیزهای زنده است این عشق تنها بدان معنی انحصاری است که من می توانم فقط با یک نفر به طور کامل و با هیجان تمام در آمیزم عشق زن و مرد فقط به لحاظ عشق به دیگران به معنای آمیزش جنسی و تعهد کامل در کلیه وجوه زندگی انحصاری است نه به معنای عشق عمیق برادرانه عشق جنسی اگر عشق باشد دارای یک اصل اساسی است و آن این است که من با گوهر وجودم عشق می‌ورزم و دیگری را در گوهر وجودی خودش تجربه می‌کنم انسان‌ها همه از یک گوهرند ما همه اعضای یک پیکریم همه یکی هستیم وقتی چنین است هیچ فرق نمی‌کند چه کسی را دوست داریم عشق باید اساساً عملی ارادی و تصمیمی برای وقف کامل زندگی من برای زندگی دیگری باشد در حقیقت این همان بنیاد و اصل اساسی اندیشه ای است که میگوید ازدواج ناگسستنی و پایدار است همچنین است در مورد بسیاری از انواع ازدواج های سنتی که در آن طرفین هم دیگر را انتخاب نمی کنند بلکه دیگران انتخابشان می کنند. و با وجود این از آنان انتظار می‌رود که همدیگر را دوست داشته باشند از دیدگاه فرهنگ معاصر غرب این عقیده به کلی مردود است برای آنان عشق نتیجه یک عکس عمل عاطفی و خود به خودی و نتیجه گرفتار شدن ناگهانی در چنگال احساسی مقاومت ناپذیر است از این دیدگاه انسان فقط خصوصیات دو فرد مورد نظر را می‌بیند و از این حقیقت که همه مردها جزئی از آدم و همه زنان جزئی از حوا هستند غافل میماند و باز در این فرهنگ یک عامل مهم در عشق زن و مرد نادیده انگاشته می شود و آن اراده است عاشق کسی بودن تنها یک احساس نیرومند نیست بلکه یک تصمیم است قضاوت است یک تعهد است اگر عشق فقط یک احساس بود دیگر تعهد دوست داشتن همدیگر تا پایان عمر پای و اساسی نمی داشت. احساس می آید و میرود. وقتی که عمل من با داوری و تصمیم همراه نباشد، چگونه میتوانم درباره پایداری آن تا ابد داوری کنم؟ ممکن است آدم با در نظر گرفتن این عقاید به این نتیجه برسد که عشق منحصراً یک عمل ارادی و نوعی تعهد است. و اساسا اهمیتی ندارد که آن دو نفر چه کسی باشند خواه ازدواج به وسیله دیگران ترتیب داده شده باشد یا نتیجه انتخاب فردی باشد همین که پیمان زن بسته شد عمل اراده بایستی زامن تداوم عشق باشد ظاهراً این نظریه خصلت اسرارنگیز طبیعت بشری و عشق زن و مرد را از یاد برده است همه ما یکی هستیم با وجود این هر یک از ما هستی خاص و بدون رونوشتی دارد در مورد روابط ما با دیگران نیز همین تضاد تکرار می شود از آنجا که ما همه یکی هستیم می توانیم همه را در حوزه عشق برادرانه دوست داشته باشیم و چون در عین حال همه یکتا و متفاوتیم به همان ترتیب هم عشق جنسی مستلزم عناصری خاص و کاملا فردی است که نه در همه بلکه در افراد معینی وجود دارد. بنابراین، هر دو نظر یعنی هم اینکه عشق جنسی جاذبه کاملا فردی بی همتا و محدود به دو شخص معین است و هم اینکه چنین عشقی جز یک عمل ارادی نیست درست به نظر میرسند ولی اگر صحیحتر بیان کنیم حقیقت نه این است و نه آن از این رو این عقیده که اگر آدمی در عشقش کامیاب نشد، به آسانی میتواند رشته ارتباط را بگسلد به, به همان اندازه غلط است که بگوییم به هیچ عنوان این ارتباط نباید گسسته شود.